ادب خدمت همه شما نگاهی میاندازیم به آخرین اخبار دانمایک در هفته که گذشت اخبار رو با یک مسابق رادیویی با یک شهروند دانمایک به بنا...